السلام الله. الله الرحمن الله. جميع شد که متعرض روایتی شدیم که در واقع قویت واحد بود تاسب شده و یم از که تا های برو جدید که ملاقاتدی اینها رو بکنیم که خب تنظیم نسن خوبیم شده، اول فاره از روایات، که در اونها عنوان سغه اخت شده یکیش اون روایت یکی از تقریبا به نظر خیلی ها این از همه شماییم تره فعل نهو و که گذشت یکی هم ایشون اوبردن از این روایت من در کلمات مثل نامی. الان یادم ایشون تا دیگه مراجعه نکردم. تمسو که به این روایت تو ذهنم نیست اینجا اوبردن اما تو ذهنم نیست و اون مکاتبه معروفی که در اصل دیگه معروف از نوع مکاتبه و توبه مبارک که شخصی به نام اسحاق بن یعوب توسط محمد بن عثمان امری سوالاتی را از حضرت علی الله داره و جناب هایی که بسیار عزیزه عنوانش این سهل تو محمد بن عثمان بن امری رضی الله عنه یعنی یو سردی کتابم و سعال توفید یا سعال توفید هم مسائل اشکلت حلیم فبرد توقیی به خط مورانا صاحب زمان عليه السلام خب خود این توقییه مبارکی از این فیلن خیلی مشهوره و مشهور است و تا اونجایی که الان در اختیار ما هست تا این لحظه سوالات ایشان و لحن سوالات ایشان الان اطلاع درشتن داره سوال بوده و احتمالم داره که مثلا سوالات رو پشتر ده ده ده هم نرشت ده تا دسته سوال جواب بوده هست جوابا همه شما اگر امامنام پشتر هم دیگه جواب داره جوابا که فیلن اینطوریه. رجب راجب توبی اهمیاری سوال هست جوابم بعدشه و سوال دیگه جواب بعدشه یا به طبیر مرحوم ابن فضائدی جواب بین سطور سواله. اما اینجا احتمال بیدن کشت سره هم چوابانه ظاهر جواب آلا که الان اینه حالا مگه اینکه ایشان جمع کرده نخم مشکلی که الان در این رو ما الان داریم که یه بسیار مهمی هم هست سوالات واضح نیست مثلا سوالات یک نشه واضح نیست این من فقط چوابها آمده و از کردید این توبیه به خاطر این که اون بسمت معروفه بلایت فقیه رو از اون دارم میکنن و اما من حوالث و واقعه سر جعوبی ها الاروات احالی سنا اونم چون در همین توبیه من شعنی شده که راجعه اون بحث بشه و دو طرف سنگ کردن اثبات بکنن یا حجیت یا بگن نه ثابت نیست حجیت میشه. عرضو که سابقا من چند بار این مطلب را عرض کرده این مطلب <تصفح> بله از مرجع مرجعی اختلاف مبنا مثل مرحوم استاد صاحب موجهه خبر اثر هستند تعبدن دنبال توصیه برای بله ممکن است یک خبری با مجموعه شواهد وصول بیاره اینان یا علم اورفی بیاره اما به طور طبیعی اونه که در ظاهر کچی از بوده شبر سغرس و رساقت محمد اصحاب نعبود روشن نیست یعنی وجهی برای رساقت ایشان که مؤتد به باشه فعلا در دست نداریم و خودیشون اشکالشون رو همین اصحاب نعبوده طبعا ما یه وقتی که درسشون بودیم چون در کتاب خود شیخم بوده محمد نعبود شروع محمد نعبود هم اشکال میکردن نیمروزکلی ده محمد بن يعقوب صابر این کتاب صوم ایشان رو تعلیل ایشان نگاه بکن چون تو بحث سومشون می کنه یک صفحه نکره در ذیغ رسیدن نوشته و یک خط سفید گذاشتن یه مادر سفیده این هم محمد بن يعقوب در رسیدن تو ایشان ده تعفان و البته سنت های محمد بن جهالت نه جهالت مال اسحاق بن و حال وجودی ذکر شده برای وساقت خود اصحار و و وجودی هم برای حسول وصول به کتاب به روایت نظر کتاب ایمان اون وجودی که برمیگرده به که مثلا روایتش مهمه است حتی در زن بردر کلینی باشه چون کلینی از اون ساع کرده بردر بزرگش باشه چی باشه وجودی از این قدید بسه آویدی که در روایت آمده و عباراتی که در روایت آمده اینها مشعل برجلالت شن و وسافت حساب معربو باشه خب این وجوه روان چون که سررجال معموم و آقایی از این دست نگاه بکن مراجعه شده این موضوع به بحثی است از یک مجموعه وجوه رو ذکر کردند. البته این وجوه به در مفهوم ساختن برده دنبال فارسی رفته این وجوه چه دی برای ایشون معنی که خیلی اصلا برای ایشون کارساز نیست خصوصا که ما با اصحاقها و غیر از نمیخوام بگم بگم خصوصا اینه فهمدن. توضیح بنظر از این. خصوصا ما از اصحاق نیعبوب هیچ آشنایی نداریم مشکل کار اینه یعنی مشکل کار تا اونجایی که من آلا اگه این کامپیوتر دارم نگاه بودن هم. تا اونجایی که من دیدم کنم در کتاب عرب هیچی نیست هیچ. یکی همین تبریه مبارک اسمیشون آمده یک دو ا صابقه هم تا مراجع نندام توی کهتاب به ها نمیند ما مامازی یا ما از یه روایت که اون کرده حساباب داره همین عنوان چیزی کموز یاد نره ندارم ااب نعبور کی به سالابق نود مثل اینجا به ساور یک روایت هم من دیگه توی بهار دیم، که الانم تو ذهنم نیست نیست نیست دیدم دیدن دیدن چه دیدن مرورن اما این با مثلا تفبر خاصی کرده باشم نه یک راویت هم از اصحاب رو نیه حول بزن یا یک قصه ایز میشه دونه ما محس خیلی رو میشه بودم و اما مهادی نگاه رو کنیم هست و بحار هست دیگه من عنوان این آقا رو ندیدیم یعنی مشکل کار این هست که ما بر ایشون افتلاعی و غیر از اون روایتی که از در در حال یکی از امامین همامین نقوم شده و این وجود یعنی آیان که قسم قبل از هر چیز اون مبانی علمی از همه مهم این این وجوب بود از امامان مستاد نمیخوای نبود و سرد این وجود رو جمع کردن این وجود هیچ نفری برای ایشون نداره اینکه لذا اصحاب محبوب به قصدار ایشون و شواهدی که برای وساقت ایشون نعرض شده اون شواهد کافی نیست میگم ما اصولا ایشون به نذاریم اسمش هم که در کتب رجالی کلا نیامده من همیشه عرض کردم آقایان عزیز این در نظر بکنید ما اصولا برای اینکه کارهامون در این جور مسائل علمی بشه همیشه عرض کردم ما سه مهروت داریم در شیعه اینطوره در یا دو مهرو در ما سه مهروت یکی محور روایات یکی محور کتب رجال یکی محور کتب فهارس ما سه محور شخصی که میخواییم کشکیز بدیم دین راجعه او بحث بکنیم اگر میخواییم دقت قد ترکیش بکنیم این سه محور رو باید جدا بکنیم مثلا اصحار نیعبوب تو محور فهارس هیچ عنوانی نظرتون نیست اسم از ایشان تو کتب رجال مثل کتاب رجال برقی یا پس رجال کشی یا رجال شهر توزی تو کتوب رجال هم حتی لاقل اسم ایشو هم نیاماده. این هم محور دوم. تو محور بحاره و محور کتوب رجال بیشون اصلا کلان اسم نداره اون چیکی؟ که ایشان اسم داره تو محور روایاته اون هم یکی توی تو کتاب غیب پدرش هر... کرده؟ دو تا کتاب غیب پدرش کرده؟ هایی یکی از الخراج و شرایط نعبوب کنه لبای اتحاق ابن ان ابی محمد ابی محمد باید امام اتخایی با تو محمد دور امساستن لب امام و اون که چیزه برسه ابو محمد که امام اتخایی است. خب یکتونم از اکمال الدین عبی امساق من به نظر این دیده بودم اول ثنای شیخ از عمریه اینجوریه یا ابو سعید قرنجان من اهل من اهل تصاحب من مع و الغریب این همین بود باشه این که علاوه با هم زمان و غریب در اینجا مراد با هم زمانه واجبه محمد علم و عثمان حالا اون اصحاب نه عرب خرایجم نمیذینه این همیناله این یکی با این یکیه اینم از محمد علم و عثمانه این دو تا رو یکیه این من گفتن یه روایت دیدم این دوتاش یکیه اون یکی که از نوکر امام و از غلام امام نرمون میکنه از عبد امام شد که سیگری باشه این دوتا من از تا یه روایت بیشتر ندیدم نوکتر پن میشینه اونی دوری با این یکیه یکیش با این یکیه یکی دیگه احتمالا شخص دیگری باشه اسمش از حاول بود م الان در این سه مورد یعنی ما در کل نه‌هر به‌وایا سه مورد اسم از سال نیاب می‌دوندی؟ هیچ چیزی ام نرفت. اخه این سه مورد کافی نیست برای اثبات مستلح که هر سه مورد هم در کتوبه عربی نیست، اخترید است کتوبه عربی. این برای اثبات وسعت مستلح کافی نیست. مبانی اسلامی بود دیگه مبانی زیسته از ابو پس یک بخص راجع به اینه البته دیدن بعد از این معاصل ما به این تصور رو که اسم از ها رو در کتاب لسان میزان ابن حجر آمده ایشون از کتاب رجال از کتاب ابن عمیتی که از رجال شیعه است از علمای شیعه که از پر ما نه اسم ایشون در کتاب خودمون داریم نه کتاب ایشون رو اونچه که ما ازشون داریم از همین لسان لسان میزان ابن حجره مثلا ما ابن نویتای در کتب ما هم چیزی که اونه آمده اون چیزی که آمده از همین کتاب دساند. میزان بود شیعه بوده ساکن حلب بوده کتاب هم در جای نوشته بدم نیست حرفاش بود یعنی هر حرفاشیشون واضح بدم نیست بدم نیست بدم خیلی شاید اطلاع تو فراوانی به شیعه نداره. اما به هر حال بعد نیست اجمالا در اونجا داره که اسحاق بن یعوب تقیی زاده به بغیت‌الله تعرض جواب دادن و بنظر اومد اسم محمد بن یعوب خودش شکش نره. بعدا هم گفتن معلوم میشه که این اصحاب بن یعوب در کتب اهل سنت اومده، حالا در کتب ماعنامیه و در کتب اهل سنت دین حساب المیزان الدهجه متعرض اسحاق بن اصحاب شده. من فکر کردم یکی این مشکلی که محمد عوام‌زندگی در عین خودش یک مصیبتیه. از کرد کل این کلام رسان و میزان که عرضش علمی نداره تحجیم اونها برزای چطور اصلا محصبت یعنی اینا میرن به کتاب رسان میزان از کتاب رسان میزان به کتاب ابن عریسه حلوی از اونجا میرن تازه به این روایتی مقابل ماست خب این روایت هست مقابل ما پیش این نامه نرش به امام زهان جواب شما تیاس به رسان و <تصحنت> ابن عبي یه حلبي که الان قرشیشون باشه یا 50 باشه یا باشه احتمال چه شما اصلا باشه ابن عبي یه حلبي شیعه همه میگه که ما الان چیزی داریم چی فرقه بابا نداره ایشون میشه نامه‌ای نوشته نامی. نامی. به برزت علی به یا بوده ما داریم نمی‌بینیم این من چند بار هر خبره متاسفانه هم باشه این مثلا مطلب جدیدی داریم. این شخص سنی از اون شخص شیعه به نشانه این مطلب رو ناهول کرده که برای ما وجدا نیست اخلاقی به تمام چی بحث و تو اینجورا داریم نمیخواد اونارو بکنه حال اینکه ما فان ما به حساب میابو خب ا دین مثلا در درجه باشه چون یعوبه سبب هم احتمال هست در حد احتمال چرا خب، چون خب. از اینکه کلهی هم بی‌وجودی برای شعر بوده احتمالاً مسلم بوده برادرش احتمالش هست در حده احتمال حرف بدی نیست اما هیچ شاهدی الان برش نداریم یعنی فقط شاهدش اینه اون اسمش محمد بنیعبوب این اسمش اصحاب بنیعبوب بلکت نبیل چون اسمون محمد بنیعبوب پس این بردرش باشه. هیچ کسی هیچ نقطهی هیچ روایتی هیچ کتاب رجالی تاریخی تراجع که شاهده داریم معنا باشه ما نداریم پس این هم حرف بسیار بله یه راه دیگه این که ما هم میریم اونی که شواهد قبول روایت زیاده خب این راه عادتاً به دردی مثل آره نمیخوره چون باید که بگه من شواهدم پیش من کافی نشون اشون بگه که ده خبری سهره که تحبتن رمول شواهد باشه نباشه و صور باشه نباشه اما در شواهد میگن باید, باید مجموعه شواهد بشه شاید بگرد ما مجموعه شواهد پیش ما مثلا یه جهد شاهد منفیش این که در کافی نیماده همه از کولینی نرمه کردن منظره در کافی نیماده این یه شاهد منفی این دیروز دیدو سوزیه که این شاهد منفی نیست احتمالا در کتاب در رساله همه محوم انصافش اگر شواهد نگاه بکنی انصافش عرض می کنن شواهد همونده رو باید شکل زیاده اما من خود بعد از رو باید رو, باید رو که از در این صدق بسیار مشهور همینگردی رو نه اوارده خیلی عجیبه اون توبیهات پراغان بسیار زیاد رو نه اوارده این رو اوارده برما شیخ توسی حدس الله و سره یعنی مشاریخ سلاسه هر سه این رو اوارده البته در کتاب های مثلا حقیق نه اوارده چون مناسب نبود توی کتاب کماردی این شیخ توسی هم توبیبت اوارده ظاهرن شیخ کولینی هم تو اصلا انصافت خودشون این, این شاهد بسیار قویه یعنی انصافت مرموم تبرسی گفت که در مثلا معروض سرگر خراب باشه و از آب ترشتن و بقیر همه دعوی مرموم تبرسی ادعای تبرسی هر قدم زیر باشه اجمالا بردنیز مرموم تبرسی ادعای این کرده که روایاتی که من در احتجاج دوردم متفقون علیه هاست روایاتی که اجماع برش هست حالا خیلی اجماعش اجمعانه این به در جمعه نشاندهنده این است که ایشون روایات بوده که در طایفه قابل قبول بوده این حد درقل داشه دیگه حالا اجماع نباشه همین ضرور مثل پارسی خورشی از سرکه هر از بد باشه به درقل از آب ترشه به درقل اجماع مصطلح نباشه یک تلقیه به قبول هست دیگه حالا درقل داشه دیگه مرموم تبرسیت این روا معناش اینه که این مورد تلقیق و قبول اصحاب ما بوده که خب واقعا انصافا مجموعه شاهد مشایق سلاسه بیارن اضافه بر اون تلقیق و است که از مرحوم تلرسی هم هست و خصوصا این قسم فشم عمل حواظس الواقعه که دیگه خیلی مشهور هم که در از و علما و انصافا هم تلقیق و قبول شده شواهد اسلوب خود متن رو روایت که خیلی این یکی از شواهد اسلوب بسیار قوی خیلی متنفع برای استفاده اند به لحاظ ترکیب ادبی و اسلوب عربیش و اسلوب بیانیش به اصطلاح شواهد بیانیش حتی از طبقات مرقوم همیانی یعنی مفینتر و تر و خیلی سنگینه یعنی یک متنی است که با متون دیگه طبقات خیلی فرق میکنه و خیلی انسان حس میکنه که محسن نوشته که بله فوردت توقیر به خط مولانا صاحب زمان یعنی این نکته توی روایت خیلی مهمه میگه توقیات به خط خود محمد عثمان نبود که امام پرموده باشن ایشونه این توقیات به خط خود مولانا صاحب زمان خیلی مسئله بالاییه حالا من از کردم مثلا بعضی ها از این که میگه به خط مولانا کشف میکنن جلالت خود اصحابه نعبوب رو. بعض در رجال این راه هست حالا این راه اشکال شده امون اشکال معروف که آقای خویی در مواد مشابه هم گرفته که ناغل این کلام خود اصحابه نعبوبه اصحابه ناغل کدیل میشنستی این که بگه به خط مولانا این ناز... ناغلش خود اصحابه نعبوبه خود ناغل کدیل میشنستیم بس نمیشه خط بقیهات الله ما غالبا از این راه وارد نمیشیم که این اشکال های پیش بیاد ما از این راه وارد میشیم که ناقل بعدی رو نگاه میکنیم ناقل بعدی مثل کلینی هست که به تعبیر مرمو نجاشی او سر ناسف الحدیث و اثبت و هم فی یعنی کلینی واقعا بقلا خب دست در حدیث حالا فرسونی نفر یا برادر کلینی یا نفر اهل شخص شیعه عادی باشه البته من نامه نوشتم جواب به خط امام زمان آمده خب این یه دفعه یک طلبه عادی میشه مثلا نزد نزد نخر میکنه میشه مرجع یک قبیل یا عالم بزرگوار نقاد معرفی میکنه که اون میاد بررسی میکنه این بسیار دعوای کمی نیست این راهی رو که اول خویی که ناقل خودشه ولی میتونیم اعتماد بکنیم این ما قبول داریم شماها ما ما میگیم به ناقل خودشی اکتفا نکنیم بعد از خودش کیه بعد این ممکن است یک فرد عادی باشه خب میای یه نفر من گفت جواب ها به خط امام زمان این فرد است اما یه نفر مثل کلیدی باشه که <تص> اوثق و ناصف الحدیث و اثبتون فی کلینی شخص عادی نیست که بیاد بگه یک آقای پیش من آمد گفت جواب ها به خط امام زمان بود کلینی از ده خطر دیگه سر چیزی نمیشه یعنی این کار طبقه ش این این بحثایی که من مثلا همیشه حواهد برای وصوله اینا رو اشتباه با خودی نکن چون ممکن این شواهد میشونه به درجه کابی نرسیده انصاف قصه به نظر ماش حواهد وصول به این روایت خیلی زیاده مثلا متن روایت هست وجود خود کلمی هست مشایخ سلاسه هست تلقیه و قبولی است که از کتاب الفتی شواهد میسونه اضافه میکنن متن خیلی سالمه هیچ چیز منکری در این حدود یک کفه که به عنوان جواب آمده وجود نداره الا همون عبارت خمس همون عبارت خمس فقط عبیه به که زواهرش اینه که تو زواهر عبارت, عبارت خمس باشه کنم توضیحاتش در محل خودش از کرد به استثنائی این فقره این و قسمتهایش هم هنوز به عنوان که ما جای دیگه هم نداریم دقیق بکنیم این نوزه دقیق بکنیم ما داریم مزامین این دقیق رو. یا دیگه هم نداره منحصر به این روایته مثلا همین که دیگه الان معروفه داریم کلرا به عناوین فائده انطفاء به وجود بقیه الله در زمان غیبت مثل خورشیدی هست که در این فقط تو این روایت آمده و اما فائده تو انطفاء ریسه که شمس التجلال حساه این فقط تو همین روایت آمده تو روایته که ادعا شده به خط مولانا امام مهدی سلام الله علیه مجموعه شوان خود مسئله غلایت فقید اجمالا بدون شک در فقه شیعی اینجا افتاده حالا حدودش بحث دیگری و مهمترین دلیل و یکی از ما در بحث غلایت فقید نتعرض شدیم یکی از اشکالات به مقبوله عمر بن همزله خب بیدونی خیلی ها تنسا کردم تو غلایت فقید برایت عمر بن همزله به این نیجرد که حاکمه این است که از همون زمان صفویه شده یه اشکالاییست الان زمان ما مطرح میشه یه اشکالاییست از زمان صفویه چون اونه آمودن عدلهی بلایت فقیه رو از مربوط و غیر مقبول و کردن آیا اسم قائل رو نمیخوام ببرم اده از اشکالات از همون زمان تصالبتن توی این کتابایی که حتی خیلی مفصل لاجب بلایت فقیه نوشته. ملتفه که اینا نشده نهیدن که این تفاقیه در همون زمان چه اشکالاتی داره یکی از اشکالات اینه که بحث ولایبی معنا منصب، منصب درش شرف از حیات اون کسی که نفس میکنه یعنی فرصم ام امام صادق قرار داد این منصب رو فنزوه الله رجب من کمی حرف حداد نهران و امامو صادق همون فیلی جلد و حاکم طبق قاعده وقتی امام صادق فوت میکنن این منصر از منصر ر یکی از به بلایت فقی در اون روح که امرنه انذره درسته امام فرمون تا اینی جلد و حاکمم یکی یک جلدیس که امام کرده آهدش اینطوره وقتی امام فوت میکنه پس امام رو متولی قرار داده با فوت امام یا زمان ما با فوت فقی تمام اون وکالت‌ها ها و ولایت ها و قیم هایی که ایشون نفس تمام میشه باید دو مرتبه الو قاین مال ایتامونه نه اما مثل ولایت بر اخماس و اینها ولایت امور اجتماعی تمام میشه بعد دو مرحله نفس بشه و ما مثلا از امام کاظم خامونه یا از امام رضا نداریم که ای هاشیه من همونی که جد اون قرارداد رو منم قرار دادم من من تنفیذ کردم این یکی از اشکالات نسب و از یکی از اشکالات به روایت امام حنظله اگر ما برتر قبول بکنیم این جعل تو حاکمه یک نوع جعل نصف فقها ها برای منصب حکومت حالا در این جام مشهور فقه ما اونه که عمل کردن به رواید ادهیشون حکومت منع قضاوت گرفتن روی شواهدی هم اهم گرفتن از قاضی و حاکم سیاسی مدیر جامعه اداره جامعه حالا اون باید بحث میشنم اشکال اینه که در هم ما این مطالبه با این مقدمات قبول بکنیم و قبول بکنیم که امام صادق این جعل رو انجام داده. خب این جعل تا است که امام صادق هست اون صادق که فوقتون هم تمام میشه باید بیاد امام و کازه رو بعد به جعل بکنن باید بیاد امام رضا دو بعد به جعل بکنن چرا؟ چون بحث در اینجا منصب، منصب امامش به جعل به نصده اگر امام میگم تازه شد پریزن خانواده من چیش میگم کتابی که الان فصل رجوع را زده میزنیم در بودن زمان مرحوم مجلسی هست مگر هم تو به قول آورده میگه بعضی از محبتی مورد مرغومه مرغومه رفیع آینایی نیست رفی رفیع آییشون خب فیلسوف هم بوده متكلم هم بوده اشغالش که قاضی هم داره داره آییم تو نیلند دقت نکردم هم ایشون مجموعه کافی چاپ شده آمده تاالان چاپ نشیدین بهمثل تازه من ویدیوم اون قبلا م از رو در جایوی اما کتاب و ایشان چون چاپ شد. از موضوع واسا هاتون چند تا اشکالات خیلی قیل داره انسان یکی هم همینه که از اشکالاتش اینه که شما ادله به لاظ فریید تمام بشه این خود ما اون ساده لذا خوب دقصد بکن. از اینکه اصحاب هم مقبوله رو که قبولکن به لاظ فریید یا پضاور و بعدم توسعه دادم ظاهرم تنها راهش شوب به ق تنها راهش همین توه مبارکه مربون مجزسی تی کرده از این اشکالشون جواب بده و نفس مثل جواب بده عبارت خود مجلسی واضح نیست خیلی مبهم ظاهرش اشکال قبول میکنه. بهترین راه برای جواب بر شوهه مربون میذا شوناوی باز الله نفسه. بهترین راه اینه که می این توه مبارک آمد این به اعتبار اینکه از امام زمانه، همون مسئلی رو که امام صادق قرار داد تنفیز هم بنابس داره و ام ملحواز سلواخه ترجیبی های لاروات عاروز سو میگم نه شهره تارشین نجا آه بشه این یه ای حال من برایش چی نرحب مخواهم وقت ما هم مسائز نیست بنام نیستیم بحث بایدیم بحث بشین برای اینکه مجموعه شباهلی که ما از این روایات در متن روایت در قزایای مختلف طلب شده که روایتی هم داره بحثیم، هم داره که جاییش اینجا نیست انصاف شواهد وصول به روایت خیلی زیاده چون مخصوصاً ادعا شده به خط محیوس الله متنش هم متن محطن بسیار بالایی است از نظر ادبی روز و متون بسیار محکمه اسالیب بیانیش و تعبیریش خیلی بالاست روش ادبی و رسوب ادبی خیلی با این سفر به ذهن ما میان که شواهد وصول روایت خیلی زیاده که اوندهشان وجود کلینی بعد صدوق بعد شیخ طوسی به ترتیب دنباله این روایت قطعاً موثر بودند در به اثر ارزش دادن به این متن و مطالبی که خود کلینی قدس الله سره مطرحه ای این مطالب و اساسیه اساسی در هر حال به نظر ما شواهد قبول نوایت خیلی زیادی این نظر شخصی برده اما با این شواهد بخوایم اثبات به ساقت اصحاق معبوب بکنیم از هم نداره چون کلا دو تا رو داره میشه از این یکی جمالا نمیدونیم اصحاق برده همین یا شخص دیگه ایز. اون یکی جمالا چرا همینه و به هر حال ما ایشون نمیشناسیم این اسحاق بن عبو که این توقیه رو برای محمد بن عبو رو کلی نهر کرده برادرش رو یا کسی دیگه باشه این خیلی ارزش داره فوق الادرزش بعد حال ایشون تمثل کردن و اما محمد بن عثمان الامری رضی الله و انه و انعبیه من قبله فه انهو ثقتی و کتابهو کتابی تو که من تو زهنم رو یا قسماتی که بعد از ایشون بودن به این حدیث توسل نکردم شروعایی رو جدی این حدیث راجعه چون این حدیث نهوز، صغاتی داره صغاتی چون اضافه شده واسن بدرینه کتاب و کتابو کتابی مرا نماینده ماست نه مراد این که هر روایتی نرو کنه سره باشه بله اگر گفتین که و... وکالتی که امام جعل کنه مخصوصا اگر ما شعر ببستاقت باشم این تعدیب این یعنی اون توصیق امامه تویق امام که جبه ما به توصیقات نجاشه قبول میکنیم چیست به توصیق امام هم به توصیقات کمتنه که این درجات قبول میکنیم فرصم توصیقات نجاشه کشی و مرگی و برمی که کم داره به نگاشات نداشته باشه توصیقات شیخ که کشی بالاتر از برمی کنیم و هر حال ما به توصیقات خیلی افراد عادی و هر از عادی نیست کتاب کشی رسیدن زدیدن ابن که پتحی و المذهبه ما اونها رو قبول میکنیم چطور میشه توصیق ایمان رو قبول کرد این سه در اینجا مثل سه همون به که چی ما رو سه با به چی سه این سقه اضافه شده مراد جزمن مراد مقام نیابت و نمایندگی و بکانت نه او سقه یعنی از طرف ماست, منصوب از طرف ماست. مورد... نه اینکه مورد و سوق ما نماینده ماست هر چینگی به کتاب هر چی که ایشون بنویسه، بسی که من نوشتم و این هیچ رفتی به جرق خبرواهه نداره واضح من ترشمم چرا اووردن میشه حالا باز اگه اون روایت رو میابردم این پکیه یه پکیه رویت اون پکیه دیگه شو می و اما لحواتس الواقعه فرج اوفیه ها الى روات احادیثنا فه امن هم حجتی علیکم و انا حجت الله پس این به نظر نه چون روات احادیث بود کلمه <تصفيق> روات احادیث اما تی اینشالله این بحثش رو توی بحثی متفقی مفصل متعرض شدیم حالا مثلا اینجوری معناه رو کنیم که امام زمان ارجاع میده شیعه رو به کتب روایات و روایاتی که اصحاب کردن که شما که الان دستتون به من نمیرسه به این کتب مثلا کتب فرسو مثلا حسن محبوب کتاب علاق مرزین برگردیم به این روایات اگر به امام اصل دستتون نمیرسه برگردیم به کتب روایات اصحاب اینها حجت هم اینجور معنا بکنیم الان مرمون شیخ هم داره دیگه معنا اینه که خود اون حوادث واقعه رو رجوع بدیم به روایات خودش رو یعنی به عبارت دیگه اخرا آیا مراد این عبارت اینه که در احکام مراجعه بکنید در معرفت حق مراجعتن به این روایات یا نه در خود حادثهی که پیش میاد مشکل اجتماعی پیش میاد به مسئله پرهنگی پیش میاد ایک مسئله اقتصادی پیش میاد برای حل اون مشکل اقتصادی به روبات آهادیز مراجعه کنید میشه یه ظاهر عبارت دومه فرج اوفی ها تو خود اون حوادث نه که فرج اوفی احکامها، ها نه اینکه که احکام اون حوادث رو بیان از خود رو برواید این که میگه فرج اوفی ها این مناسبت با معام بدایت این که میگه تو خود حادثه تو خدا مراجعه مراجع بکنیم برآورد آحادیز این مناسبش با؟ این است تو خدا حادثه خود یک مشکل اجتماعی پیش آمده مشکل اجتماعی بعدی یک مشکل سیاسی پیش آمده اونا حل میکنیم یک مشکل اقتصادی پیش آمده سیاست داخلی سیاست خارجی سیاست مالی مشکلی پیش آمده این مشکل رو باروجو برآورد آحادیز حل میکنیم این اگر اینجور معنا کردیم این به ولایت نزدیک تره اما اگر اونجوری دیگه معنا کردیم هم مشکه حوادثی که پیش میاد در این معرفت خوب یه به ما مراجع نکنید این برگردید به روایات مثل من دیگه فهم نکنید مثل ما است که از عریضات ما نهار شده از امام صادر نهار شده از امام کازر از امام باغیر سامالله علیه مراجع نهار شده. به این روایاتی که از اونها نهار شده به اینها مراجع کنید و اگر این معنا در میاد شبیه یک ای مطلبی که از امام جادم چونم بار نهار میکردیم که به امام جاد عرض میکنه که تقییه در بین اصحاب ما شدید بود کتاب ها رو در میکردن زیر زمین حالا کتاب ها رو در آوردیم ما سماع نداریم مثلا کتاب علا نرزیم من از کسی نشدم از علا امام میتونه حد صوبه ها فعلا کتاب حقه اشوار نداره سماع هم نشده باشه شما می‌دونید که این کتاب ما در آن زمانه که شما این بازار کتاب و کافی می‌خرید می‌گند می‌گن رعل کلیمی فل کافی شما که از کافی شما ندارید که اجازه ندارید می‌گن نمی‌فهمه رعل کلیمی کافی این شبیه اون ها در اون زمانه و اگر این باشه باز هم از اینی که از این روایت در میاد حجیت روایتی که در کتب اصحاب ما موجوده در میان همون مطلبی که بعدها شیفتوسی ادعای اجماع کرده یعنی ادعای اجماع کرده که این روایاتی که در دست ما هست از خوابا اینا قطعا ما بینا مراجعه میکنیم روشن شد پس ایشون به یک پیکه از این توبیع مبارک تمسط کردن که انصافاً هیچ ربطی به ما نهنبی نداره باید توچ کلمه سقری داره که واقعاً سرعتی میخوادم بیارم ولی مسلم نگینم بیارم کی سردر شد میشه و سرعتی من اهل بگی. این سرعتی در اینجا تقریباً مرا وکیل و نائیب. این هم راجع به این کلمه. مورد سوم که درش کلمه سهات وارسه که از کردم مربوط به اینی زیاد این تماس گرفت که الان جوندیم در دست میکن. در روایتی که فعلا در رجال کشی آمده، ایشون این روایت رو از علی ابن محمد نقوتیبه ایشون ظاهر از مشایف حدیث در نشابور بودن از ایشون آشنایی ما نداریم یعنی اطلاعی به حال این ابن به ما نداریم نمیشنسیم این علی ابن محمد شاید مرمشه گفته فاضران در تقابه جان و اشاگرزای نسبتا معروف فضل نشازانه ای که از طرق اصحاب ما به فضل نشازان ایشانه لیکن خب گاهی هم از غیر فضل دارم مثلا اینجا از غیر فضله. من از کردم ظاهرم مردم کشی به نیشابور آمده و از ایشون حدیث چندیالا. احتمال این که مثلا ایاشی هم باشه بود بعید ظاهرم خود کشی همیشون هم قال حدثانی ابو حامد احمد بن ابراهیم مراغی که ایشون نمیشنستین قال برد عدل قاسم نهلا ظاهرم جد وکلای علمه متأخر بوده خیلی آشنایی این بد نیست. نسخه مکان خرج من لعن ابن حلال نسخه به اصطلاح انگلزه میگه فوتوکوپی, فوتوکوپی. میگه اون مطلبی رو که امام این مطلبی رو که اینجا نرمو میکنه از امام حادیث امام عسکری راجع به ابن هلال نسخه چیه حادهیش میگم این نسخه کنان یعنی این اون رو استنصاف میکرد زمان اومدان فتوکپی میکنم از اصطلاح ما, ما کان خراج من لعن ابن احلاق بعد میبر کان ابتدا اضاله که انکتب علیه السلام الى قوامی دل ارام البته خدای حضرتان در ارام بودن ما را مثلا وقتاد و کوف رو بودیم بسند تا غیر استان دارم احضر و صوفی المتسنه. این چون خیلی این احمد ابن احلاق هم نصفتان عمر طولانی داشت و هم خیلی اهل زهد و قول موزه ما ارفان های میگه چی به شما یه <تصحب> حالتی و سفر, سفر و 50 سفر پنجه و چهار سفر از بغداد تا مکه رفته بود که بیش سفرش دارم پیاده بوده خیلی اهله وقتی ازش از تعبیت به صوفیه متصنع شده انقا و اعلم الاسحاقی این حالا احتمالا در نامه به صورت زن میزونه اسحاقی و که اسحاقی این بعیده سلمه الله و اهل من اما علمنا من حال حال الفاجر تبیره حال حال الفاجر چون جزه الفاظ سبه صدورش از امامیه امامی خیلی بعید به نظر می رسید من یک که ایک مسلحه مکتب و من از کرده ما این دیگه مناسبه بحث مکاسب متعرض این هم به این دهاز شدیم و جمیعه منکان سألکه و سألکه انهو من اهل بلده شایدن با به اصحافی قوم باشنستن که همانده به اون ول خارجی اونایی که در بلد ایفتن و خارجی دونن و منکان یستهب و انیتال علازاله هر کسی که از شیعه هست این مطلب رو بشتره از این البته سند یه روایت ضعیفه و شواهد خارجی هم معیلش نیست این شواهد خارجی که مثلا این احمد بن نهلال از زمان امام عسکری و امام هادی منحرف بوده شواهد نشونده که در اول قیبت صغرا چون ایشون قیبت صغراییشون نصدق به عثمان بن سعید اظهار اخلاص میکرد ناید حضرت میدرست که دویست و شست و عثمان بن سعید بعد محمد بن عثمان که جوان بود و خود احمد بن نهلال که مرد بزرگی بود خوب بردارید از یه شاد نمت سال خیلی مشهور بود چهره مشروعی هم حدود یک سال دید. دو سال احمد بن هلال با محمد بن عثمان همزمان توی محمد بن عثمان ایشون خیلی فعید نمیکنه. یعنی ایشون میگه لم می یست من نمیگم ایشون نائب نیست زم این منشه میشه که توریعات به لعنش در این یه شرکی که حالا اینجا نیست و توضیحاتش در محله خودش عرض کردیم خیلی بعیده که این لحن اینها در زمان امام هادی یا امام عسکری باشه خبه الاب بعیده شون بعد از دو سال, سال دو سال بعد از مرموم اثمان اون سی فوت میکنه تو زمان خود همون محمد ابن اثمان محمد بن اثمان عمره چویانی میکنه تا سی ساد و شار سی و هشت سال بزرگترین کسی که عمره وکالت داره همین محمد بن اثمانه که ادهی هم در همین زمان ایشان این قول معروف خارج شدن یکی این همین آیه احمد ابن هلاله یکی همین محمد که این نسیره ها علاوی شام اونم جدا شده از احمد ابن بعد بعد حضرون فینهو لا عذر لعهد من موالینا و تشکیفی مارا و انا قد و انا نفاب زهن و و ها ایاهو و عرف نامای فون منظاره ان شاء الله تعالی البته احتیاج به حدیث خواننده بشه این روایتا سرده بهتر ده ما مرحوم اینا که فقط همون لا عز الهد من مبونه فتشیک ما رواه انس ثوابنا یا يا ادي ه انس همینطور که رو واسه نیست از در شواهد تاریخی هم که همچین اطمینان من به این باید ندارم این باید. بعید لعنه ایشان قبل زمان زمان قبل از قیدت صغرا صادر شده باشد و هر حال علیه حالا سند روید روشن نیست منحسن در کتاب رجال کشید گیرهای سندی هم داره مشکل سندی محتمی هم داره تاریخی هم داره و انصافا خیلی مشکل محلی ما با عنوان تعبد بیایم. این یک نظافه که این سقاطنا مثل سقاطی میمونه مراد وکلای کسانه که به عنوان چون الگین سقاطها قد اره دو قد اره خود داره یعنی اون سقاط ما که محروف هم به امنان و فاوزه هم سرنه نه اینکه فقط یک نامه اصلا بین شیعه معروف است که ما اسراب و توسط اونها مطالب امامت و توسط اونها به شیعه میرسونیم الگین اره دو این که خیلی این ربطی به حجید خبر عقل یا خبر سره ندرسته ان نحن نناوف وفسرنا و نحمله و, نحمّل و, و اياه الیه ما تورد اینها این اسرار رو به می رسونید کاملا واضحه که مراد مقام رسالته رد تیگ حجیه به حجیف خبر ثقه نداری که مرحوم دائنی دیگه راه ندید و این مطلب اسرار ما فرط حدیث اول توضیح ندید این سحریستو توضیح میدم یک دیگر راجع به یونس بن عبد الرحمن سرت میگوین بعد با خودمون اون مع رواي برجلي کرده توضیح میدین لكن اونم اجمالا به روز معلوم که سه تا روایت داریم در دو تاش این تحریر نیامده در یکیش آمده و راوی هم یکیه به سر یکیه راوی به یونس بن عبدالرحمن از امام رضا هست متنش اختلاف داره توی متن مشخصه ابی یونس بن عبدالرحمن سرتا توی دو مختلقیشم که مثلا عقل و بغوی یونسن لازمون سختن توش رکار برداشته نشه خود همین مقدار کافی که ما وصول به وقت نشه این که اولاً صلی الله